مان جلد دوم، فصل ششم، اسناد کراس، اسناد کراس از اهمیت قابل ملاحظه ای در حیات این سیاره برخوردارند دارند. این نوشت جات کخن تاریخ گذشته سیاره زمین و همچنین آینده آن را در خود محفوظ میدارند. سر گذشت تاریخی، و پیشگویی آینده زمین در این اسناد کسانی که قابلیت قرائت آن را داره باشند از روزگاران گذشته طبقه فیزیکی و آنچه که بعدها قرار است در آن حادث شود مطلع می‌گردند. این مکتوبات از دو بخش تاریخچه و پیشگویی تشکیل می‌شوند و این چونین است که از آغاز در دیر و تحت محافظت استاد عظیم شعن اک فوبی کوانت می باشند این دیر در اعماق رشتکوهای بویکا مگنا قرار دارد. این نوشتارها به ما میگویند گویند که به هشته ای بشر که از آن به عنوان باغ عدن نام برده می شود در قاره گمشده نموریا که پنجاه هزار سال پیش بر اثر زمین لرزه ها و امواج سیلاس ها نابود شد قرار داشته است این قاره در قسمت مرکزی اقیانوس اطلس امریزی شکل گرفته بود و جزایر متعددی که در پهنه وسیع آن سر از آب برابرده بودند در واقع امتداد های عظیم این قاره بودند آنجا سرزمینی عجیب با یک صد هزار سکنه بود که یکی از بزرگترین تمدنهای کره زمین را به وجود آوردند بایگانی های کراس از خلقت انسان در این دیار اسرارآمیز صحبت می کند قرنها بعد نویسندگان متون مذهبی از بخش های تاریخی این اسناد به جهت تغییر تفاسیر و برداشتهای خویش از خلقت بهوه گرفتند که از پرونده هایی که در دل اسناد کراس موجود است نوشتجات باستانی نعکل می باشد که به قبایل و تمدن‌های های بدوی این سیاره اختصاص دارد گستره زمانی اسناد کراس تا به حد روزهای نخستین تشکیل سیستم سیارهای این جهان نیز امتداد میابد در روزگاران باستان فقط بولهای عظیم معنوی قدم به سطح جهانهای سیارهی میگذاشتند. زمین در حقیقت یک بهشت بود زیرا تمامی مخلوقات قادر بودند بقای خیش را از این سیاره پرنعمت تأمین نمایند پهنه یک دیتی مملوغ از وجودهایی بود که معصوم و مبرا از شرارت و تیرگی ها بودند و شعف در حد اعلای خود جاری بود اولین دوره ساکیا یوگا دوره طلایی بود حسری که در آن حقیقت و عدالت محض حاکم بود هیچ ردی از قوانین اجتماعی یا حتی دادگاهی برای محاکمه یا ترسانیدن انسان ها نبود زیرا همه در در پرتاب حق عمل می کردند و حقیقت در قلب آنها نگاشته شده بود جنگل ها همچنان بکر و دست نخورده بودند چون احتیاجی به بریدن الوار برای ساخت کاشانه و کشتی ها نبود و نیازی هم برای نمودن برج و بارو در اطراف شهر ها احساس نمیشد. اینجا سرزمین همیشه بهار بود و حالی که در تمام سطح قاره گسترده بود گلها بدون کاشتدانه سر از خاک بر میکردند و اصل از شهر درختان تماویر حاصل می شد. سپس ترتیا یوگا دوران نقوه وارث عصر طلایی شد برخلاف دوران تلایی بهار کوتاه گشته و سال تقسیم به فصول شد برای نخستین بار انسان متحمل سرما و گرما گرمایش خانه و سرپناه نیاز اساسی بشر شدند. غار اولین پناهگاهی بود که او برای خیش برگزید. دیگر بدون کاشت محصولی به دست نمی آمد و کشاورزان ناگزیر از بذرپاشی و استفاده از اسب‌ها و گاوها برای حمل گاواختن و خیش شدند. و خود نیز در مزاره بیوقفه کار میکردند عصر بعدی دو پارایوگا دوره مسکر یا مسرق بود خشونت و صبر در درون انسان قوت گرفت و او شمشیر، نیزه و کلا خود را ساختن آغاز کرد او با کچکترین بهانه به کار جنگ با همسایگان و همجواران خود میشد آنگاه که همسایگان خیش را غرق در ثروت و نعمات می‌دیدند، در حالی که خودشان فاقد این متاع بودند، بدانها یورش می‌بردند تا این کامیابی‌های مادی را ماره خود کنند. اینها مقدمه تحریف بود. در این دوره انسان بیش از همیشه در معرض قدرت کل قرار گرفت و خود به دست خیشتن سرد راه پیشروی روح در مسیر کمال گشت. امروز اصر آهن یا کالیوگا می باشن. این بدترین و خشنترین دوره است در این اصر جهان غرق در جرم و خیانت است و هر آنچه که در گذشته حقیقت و اسباب شعف بود به کلی از میان رفته است دروغ و فریب در همه جا ریشه دوانیده است و خشونت در حد افراد شاید به همین دلیل گفته می شود که بشر هرگز بار دیگر سوه را در زمین حداقل در این دوره در آغوش نمیکشد زیرا نیروی کل هدایتگر دنیا شده است و حکومت اوتاروزی که سوگماد جهانهای پایین را نابود کند ادامه خواهد یافت اینها ماهایوگا یا منوانتاره هایی هستند که غالب همیشگی چرخه تاریف کیهانی را میتابند. یوگای فعلی یعنی کال یوگا یک دهم ده از کل مدت این چرخه را شامل می شود. ساکیا یوگا عصر طلایی و پیش درامد چرخه کیهانی چهار دهم ده چرخه یا یک میلیون 728 هزار سال است. ثرثیا یوگا سه دهم چرخه را به خود اختصاص داده است. و یک میلیون 96 هزار سال به طول میانجامد. یا پارایوگا یا اصر مصر دو دهم ده از این گردونه یا هشت صد هزار سال را اشغال میکنه کالیوگا یا عصر آهن دوره تاریکی این چرخ گونه که ذکر شد یک دهم ده از مدت زمان آن را به خود میگیرد که چهارص و هزار سال طول میکشد سیر نزولی این اداد نماینده انحطاط فیزیکی و اخلاقی بشر در هر اصری است یوگاهای چهارگانه معمولاً چهار میلیون و هزار سال بوده و تشکیل یک یوگای بزرگ یا ماها یوگا را میدهند هر یوگای بزرگ دوره ای زمانی در تقویم کیهانی است که به طور تقریب پنج میلیون سال به طول میانجامد. روح طی ای این دوره‌ها در جهان فیزیکی و روانی مشغول به پیکار و ستیز است اما در پایان هر یوگای بزرگ سودما روحهایی را که به سرمنزل مقصود نرسیده‌اند در حالت اغما به آث مالوک طبقه پنجم برده و آنها به همین حالت در آنجا به سر میبرند تا اینکه سودما از نو جهان‌های پایین را تنظیم و تکوین نماید پس از به سر آمدن چند میلیون سال سودما چرخه‌ی کیهانی را خاتمه داده و هر یک از روح‌های خواب‌آلوده را به جهان‌های پایین باز می‌گرداند و ایشان بار دیگر این فرصت را دارند تا سفر طولانی خیش را به سوی کمال ویومونتها از سر بگیرند چرخه یک بار دیگر از سات یوگا آغاز می شود جایی که همه چیز در آرامش و سکون بوده و انسان در هماهنگی تام با طبیعت و کل مخلوقات زیست می کند آرزو و میل با آرامش و عشق در کامل ترین شکل خود در خلال دوره طلایی در انسان ریشه میگیرد انسان این صدا را از طریق نیروهای روح به خاطر آورده و به همین دلیل پیوسته جویای صلح، آرامش و عشق در این سیاره است لیکن چون این مقصودی در دوره کالی که اثر سیاهی و اندوه است و توهمات بر آن سلطنت میکنند هرگز به دست نمیآید. اما بشر این را نمی‌داند او بایستی از پس مهانتا استاد حق در غیر حیات روان شود کسی که او را از لابلای پیچ و نیروهای ویرانگر کل عبود داده و به جهانهای خدایی می رساند. در غیر این صورت در طول این دوره رنج برده و سپس به مدت 5 میلیون سال در جهان روح به خواب می رود. و مادامی که زمین او مجددا خلق می شود میتواند از شعف حیات مجدد خود بهرهمند کردند گردد. ادیان اصولی بر اساس خاطرات عصر طلایی بنا شدهاند. این ادیان غافلند که حیات در جهانهای پایین موقت بوده و روح نهایتاً بندهای خود را گسسته و به سوی توقات بالاتر صعود می‌کند و واصل قلمرو خدایی می شود ایشان تنها به وعده های مادی حیات چشم روختند و از درک این مطلب عاجزند که از طلایی فقط هر پنج میلیون سالی بار از راه می رسند و واقعا هم زودگذر است و در مدار زمان دوره های بعدی جانشین آن می و در نتیجه بشر قرقه در انحرافات مادی و اخلاقی می هر آنچه که بشر در اینجا و بر روی خاک این سیاره انجام میدهند، یک بازی بیش نیست و توسط کلنی رنجان سلطان جهانهای منفی هدایت می شود انسان هرچه سریعتر این را فهم نماید زود تر در مسیر اک قرار می گیرد و کارماهایش سریعتر شروع به استهلاک می نماید ازن سودماد نیروی معنوی اولیه یا اک شکل گرفت و به کهانهای مادی و معنوی نظم و قانون بخشید بر این اساس آن چهار فرمان صادر نمود نخست تمامی بهشتها و سیارات از گازها و آبهایی که در سطح جهانها قوتور بودند شکل گرفتند دوم انسان در سطح سیاره زمین خلق شد و سایر وجودها در سیارات دیگر سکنا یافتند سوم زن از دنده مرد به وجود آمد تا همراه و ملازم او در سیاره زمین و وجودهای سایر سیارات باشد و چهارم بشر و مخلوقات سایر جهانها با یکدیگر در صلح و آرامش زندگی میکنند و به سوگماد و همچنین به خواهران و برادرانشان عشق میورزند این فرامین در سر تا سر سرزمین های ساتیا یوگا نافذ و جاری بود آن عصر صلح و سرور آدمی در زمین بود انسان از فرامین به جهت تحسیس زندگی مسالمتامیز پیروی می‌کرد و علاوه آن به سوگماد، خواهران و برادرانش عشق می برسید. آنجا سرزمینی بود که همه چیز در آن زیبا بود آنجا سرزمین گیلاغ های گرسیری و جلگه های اقیانوس اطلس و پوشیده از چراگاه و مزارع بود و تپه آن زیر انبوه چمنزاران و درختان میوه پنهان شده بود سرزمین لمریا جهانی سرشار از شعف و سرزندگی بود مردمانش در سطح بالایی از تمدن قرار داشتند روشن زمین بودند زمین در عهد آنان روی وحشیگری به خود ندید این دیار با مختصات منحصر به فردش یک امپراتوری مقتدر برای تمامی بشری در زمین بود و همگان تحت لوای نظام نامه‌ای که به وسیله حکام برقرار شده بود زندگی می‌کردند نابودی امپراتوری لمریا و اقبارش هزاران سال قبل و به واسطه ی تشکیل توده های گازی شکل در زیر پوسته زمین رخ آنجا سرزمین آریایی هایی بود که قلمرو خیش را در سراسر سر جهان آن روز وسعت بخشیده بودند. گفتار پندار و حقیقت در بالاترین مقام در افکار مردمان این اصر فروزان بود. از فکری کاملا متفاوت از دنیای مدرن امروزی در میان آنها حاکم بود که رکن اساسی این عصر محسوب میشد اصلی که می گفت سیرت و رفتار مرخواسته از عالم درون است مانترای هیو صوت مقدس همه مردمان ساتیایوگا یوگا بود آن مهدت بخش الگوهای کسرت بود و در جهت هوشیار نمودن انسانها نسبت به یگانگی معنا تدبیر شده بود از آنجایی ای که اک برترین میرو در این دوران بود به مدت یک میلیون و هفتصد هشت هزار سال تا قبل از اصر نقوه به طول انجامید. تعریف رابطه جنسی در آن دوره به کلی متفاوت از اصر جدید بود رابطه جنسی بسیار مقدس بود ظهور آن در ساتیا ناظر بر اتحاد بین نیروهای مذکر و معنس و تحت رهنمودهای استاد هق هموار بود این مسئله در گذر ادوار مختلف تا رسیدن به اصر حاضر یعنی دوره آهن یا کالوگا سیر قهقرایی پیمود در این دوره سکس حالت پرستش به خود گرفته است و توسط عده کثیری از انسانها که بیخبر از پنج نفتانیت های مخضب ذهنند تمرین می شود اینها عبارتند از کاما یا شهوت کردها یا خشم لبا یا تمه موها یا وابستگی به مادیات و آهنکارا یا خودپرستی و ارضا نفس کامای شهوت از نفسانیاتی است که امرترد اصلیش متزلزل ساختن و احتباس زنان و مردان به مرتبه حیوانیت است. آن توجه ایشان را بر چیزی معطوف می نماید که مابین انسان و حیوان مشترک است. چنانچه میل جنسی در شیار بلحقی خود مورد بهرهوری قرار گیرد تبدیل به والاترین تجلی اش می شود. در غیر این صورت در سراشیب انحراف می افتد. جولانگاهی که توسط کل نیرنجان تدارک دیده شده و وظیفش نگه داشتن روح در دنیای ماده است هرانگاه که فرد به درون دام افراس سقوط می کند از شعن خیش را تا حد حیوان پایین می آورد طبیعت زن با امکاناتی تجهیز شده است که استمرار حیات در سطح سیاره زمین را تأمین می این دیگر با خود انسان هاست که تصمیم بگیرند چه چیزی برایشان در قرائز و روابط جنسی الجهیت دارد. اگر ایشان از این قانون الهی پیروی کنند تمامی شئونات زندگی شکل بهتری به خود میگیرند این قانون میگوید سکس نبایستی در دور افراس و زیاد روی بیافتند لیکن که چنانچ سکس را در اصفار شهوانی و انرژی خود را تلف نموده و ذهن خیش را تیره و تار می کند و نهایتا به مثابه حیوانات اولیه در حماقت وصف ناپذیرش جان می دهد وقتی نیاز جنسی به عوض آن که تحت اراده و کنترل فرد درآید، سکان آگاهی او را به دست انحراف او تناب ناپدیر است و او از وضعیت انسانی به وضعیت حیوانی مسخ خواهد شد بنابراین سکس در صورت شهوانیش فاز اصلی کاما به حساب می و هسته مرکزی آن زیاده روی باشد کاما یا افراد خمیرمایه عدم تعادل و شرارت در نرکالی یوگاست هر فعلی که به افراد بیافتد مقام شامخ انسانی را مشبش نموده و حواست او را کور می کنن. آن انسان را به کیهان‌های مخلوق می چسباند حالان که روح بایستی سر به سوی آتمالوک طبقه پنجم داشته باشد با پایان عصر طلایی لموریا در اثر زمین لرزه و سیل و زیر آب رفت و نوبت به عصر نقره یا تریتا رسید آتلانتیس پایتخت امپراتوری بزرگ جهان شد این خطه در اقیانوس اطلس مابین شمال غربی آفریقا و آمریکای جنوبی قرار داشت اقلیمی معتدل بر جهان حاکم بود و رستنیها با تلاشی اندک از زمین میرویدند. و جمعیت امپراتوری آتلانتیس را تقویر کردند قلمرو این حکومت تا مصر، یونان، خاور میانه و حوضه دریای سیاه کشیده شده بود آتلانتیس نخستین بار 25 تا 30 هزار سال پیش دایر شد اکثریت سکنش بلند قامت سفید پوست، دارای موهای بور و چشمان آبی بودند و به زبانی تکلم می‌کردند که مخلوطی از لموریا و لحجه اسکاندیناویایی بود ایشان غلوانانی قابل بودند و حرفه اصلی ایشان تجارت آثار باقیمانده از امپراتوری کوهن لموریا در اطراف دریای چین و خاور دور بود در ابتدا آتلانتیس توسط شاهان اداره می اما به تدریج حكمای دانشمند یا فرزانگان جایگاه ایشان را اشغال کردند که البته خودشان نیز بعدها توسط یاغیان مستبد و دیکتاتورها بیرون رانده شدند این حکام که خود را انسانهایی عاقل و فرزانه معرفی میکردند با اتکا بر معنویت تحریف شده توده ها را کنترل میکردند این دوره دوام زیادی نیافت و این تمدن چگرف در زیر سیلاپ حاصل از زلزله های محیب و تغییرات ناگهانی ناهمباری های زمین مدفون شد عامل این امهدام اخلاقیات غلط، فساد و تباهی و انحراف جنسی بود هیچ خطی از آثار این تمدن عظیم که روزگاری بخشی از این جهان بود برای نسرهای بعدی باقی نماند. امواج خروشان اقیانوس اصلا و توفان‌های سهمگین سرحدات آن را به زیر کشیدند. دوره بعدی تحت عنوان دو پارایوگا یا اصر مصر به منتهی ظهور رسید. این دنیای باستانی است که نقوش و آثارش در بیشتر داده های تاریخ بشری و از طریق شناسی و حفاری‌های علمی به دست آمده است اولین نجاد سخت شده در این عرض هستند آنها نخستین قومی بودند که مصر را کشف کردند و از آن در ساخت سلاح سود جستند برخلاف اصر نقره که ندرتن از شمشیر استفاده می شد، ایشان اولین شمشیر را صنعت کردند از نقطه نظر تاریخی ایشان اولین فاتحان نوع بشر بودند تاریخ آنها حاکی از آن است که خاورمیانه میانه زایچه اولین نژاد بشریت بوده است و این خود ثابت میکند که آنها اطلاعی از دوران تلاعی و نقره نداشتند با استناد به کتب مقدس این آغاز بشریت است و واقع ایدن در مکانی در کنار روت دجله واقع بود و بعد شهر بابل در کنار آن ساخته شد انسان برای بقای خود وابسته به زراعت و دامداری بود. او شکار می‌کرد، از اسبها سواری می‌گرفت و به اکتشاف های دیگر می‌پرداخت. تمدن خارق‌العاده مصر در خلال همین دوره پا گرفت. از روح هنر و دانش یونانی و از جمله آنها هومر نیز در این عصر هویدا شد. این عصری است که انسان قدرت را به حیات زیادی تقسیم کرد. و آن را در غالب ربنوها و, و الهگان تجسد بخشید این دوره روزگار حاکمیت خدایان باستانی یونان، هند، مصر و ایتالیا بود سوگماد از خان بشریت دور افتاد و روحانیت قوت گرفت و تمامی مردم و حتی حکام سیاسی را تحت تأثیر قرار داد با گذشت سالیان قدرت کل اقتدار بیشتری یافت و نهایتا مبدل به قدرت اصلی آن روزگاران شد انسان و آگاهی انسانی مورد استثمار این نیرو قرار گرفت به خاطر اصرال انسان در بقا و برقراری نسل خود در این کره خاکی و سایر سیارات کیهان فیزیکی انحراف جنسی بشر بیش از پیش شعلور شد تبدیل به نیروی محرک زندگی گردید و بالاترین حد عواطف بشری و مخلوقات دنیاوی را به خود اختصاص داد این دوره در حدود سه هزار سال پیش از تغییر در تقریم جهان و در زمان نارمر یکی از فرعون باستانی به دلیل بروز زمین هایی که مدیترانه را داد پایان پدی رفت و بار دیگر جغرافی های زمین تغییر کرد دوره بعدی کالیوگاست که همکنون آن به سر میبریم و و دو هزار سال به طول خواهد انجامید. در این دوره مفهوم خدای واحد مجددا به آگاهی انسان بازگشت ما افسوس که آن خدا خدای جهانهای پایین است حالان که خدای حقیقی انسان ساتنام پروردگار مرتبه روح است و شایسته پرستش هموست در این بروه دیگر کل به طور کامل بر جهانهای پایین مسلس میگردد. بشر مادیت و سکس را مورد تقدیس و پرستش قرار میدهد او معتقد است که چیزی فراتر از مرگ وجود ندارد و تلاش برای رهایی بیفایده است او گذشتش را به باد فراموشی سفرده است ای بر چشمان معنویش فرو افتاده او را نسبت به موخبت حیات و زندگی گذشتش ناسپاس کرده است او همچون حیوانات به حیات خود ادامه میدهد رنج میکشد و محتوای منتقداتش را خدا و یا خدایانی تشکیل میدهند که از بیرون به وی تحمیل شدهاند. او درگیر قدرت مایه نیروی که اشکال توهمی واقعیت مادی بشر را زایش میکند. لیکن مایا به خودی خود توهم نیست، بلکه نوع نگرش فرد بر واقعیات است که توهم باشد توهم بشر در درون خود اوست. و کسی که افسار این نیرو را به دست خیش گیرد، ابزار آزادی، قدرت جادویی اک و نیروی خلاقه تبدل و تناسخ را در سرنگشت خود دارد قدرت دیدگاه درونی انسان در اک تولید کننده اشکال و است که با آگاهی از آنها میتواند خیش را از حقایقی والا پر کند حقایقی که تمامی مبانی افیل جهان ذهنیش در برابر آنها روز به روز کمرنگ و کمرنگتر میگردد در اینجاست که او چیزی را تجربه می کند که به زعم افکار و عواطسش هیچ است ولی واقعیت دارد این راهی راهیست که صوبماد مقدس به مدد آن از درون و بیرون حقیقت آن را به جامع آگاهی درون می و روح انصار اصلی حسیت انسان است که از ظرفیت لازم برای صعود یا نزول درجات در سلسله مراتب جهان های بهشتی برخوردار است نتیجاتاً مایا همان شدن است منجمد و غیر قابل این هم از لحاظ شکل و هم از حیث مفهوم مایا توهم است زیرا از حق جدا افتاده و در زمان و مکان محدود گشته است فردیت شخصی که به روشن زمیدی نرسیده باشد، اقتضا می که تلاش نماید تا خیش کاذب را در وضعیت مایا و ادراک منفی حفظ نماید بایستی توجه داشته باشیم که کالبد روشنزمیران نیز و همانند کالبد ماهانتا خوصاد حق در قید حیات ساخته و پرداخته مایاست اما نه در ادراکات منفی ادراک ایشان ناشی از خلقت آگاهانه ذهنی است که خود را از توخم رهانیده و این دیگر خیشتم را محدود نمی کنند و پیوندی هم با نفس حقیر ندارند در این صورت مایا بخشی از نیروی خلاقه است که در چارچوب آگاهی انسانی محدود شده است و همان ارسه است که توسط متافیزیسین ها مظاهر و جادوگران سفید و سیاه مورد استفاده قرار می گیرد برخلاف بالاترین آگاهی یا حقیقت مطلق در تمامی اشیاء و صورتهایی که در پهنه این واقعیت ظاهر می گردد هجابی وجود دارد که باعث می شود همه چیز توهمی به نظر برسند به خاطر آنکه آنها فقط مظاهر نارس و مختصری می باشند که از ارتباط و غرابت با معنای حقیقی بی هستند تنها ماهیتی که می بدان صفت مطلق را نسبت داد اک می باشد که بر همه چیز محیط است. هر مظهر ناقصی درجه ای خفیف از حقیقت را متجلی می سازند و هرچقدر از مقیاس کیهانی کمتری برخوردار باشد توخمیتر و فانیتر است. نظرون این جهان به این مقیاس آگاهی یک بعدی اطلاق می شود که در تضاد با آگاهی واحد و یا بدون بعد می باشد این با شروع حرکت از طبقه فیزیکی فرد متوجه می شود که می با آگاهی یک بعدی مواجه شود جهان اسیبی آگاهی دو بعدی موج الی آگاهی سه بعدی مرتبه ذهنی آگاهی چهار بعدی و روح آگاهی پنج بعدی خواهد بود در ماورای طبقه روح مسافر به آگاهی بدون بعد می رسد. با وصول به موقعیت پنج بعدی آگاهی او داخل در ادراک و فهم قانون عمل و اکسل یا قانون کارما می گردن. حال او به ارتباط تک تک حلقه های زنجیره کارماهایش با سایر رخدادهای سلسلهوار فارمیک در کل هستی پی میبرد او زنجیره ای کیهانی را مشاهده میکند که از خودش آغاز و در سودماد اقیانوس عشق و رحمت پایان میپذیرد از اشتراک فردی خود با تمامیت حیات و جهانهای معنوی آگاه میگردد همچنین از اشتراکات خویش با ملل، نژادها تمدنها، بشریت سیارات منظومه شمسی و نهایتا کل کائنات آگاهی میابند با این روشنگری او به درک پیوستگی حکمت در جهان جهانها نائل آمده و دیگر در پی اکتفابات روانی و قدرتهای جهانهای پایین نیست از دیدگاه هر شیعی یا حوییتی صورتی از مایاست اما مایا در معنای عمیقتری از حسیت خود واقعیتی از وجه خلاقه کائنات می باشد و به عبارتی وجه خلاقه هستی در جهانهای پایین است به همین دلیل مذهبیون و متافیزیسین ها معتقدند که مایا و هر آنچه که از مجرای مایا عینیت مییابد خود خدا پس ما علت توهم است اما از سوی دیگر وقتی به عنوان ماهیتی مشتق از سیاله اک به آن بنگریم متوجه میشویم که دارای ساختاری پیوسته بوده و ابزاری است که اگر هماهند با اک عمل نماید تبدیل به موثرترین نیروی مبدل و تنها رابطه کیهانی با آن میشود ولی چنانچه بر علیه اک وارد عمل شود یک نیروی بازدارنده به حساب میآید. پس نتیجه میگیریم گیریم که مایا شاخصی ضروری برای آگاهی انسانی می باشد تا زمانی که فرد در آگاهی انسانی زیست می کند مایا بخشی از وجود او می باشد رکن سازنده ای که تمامی مظاهر و فرهنگ و تمدن ملل را از درون به بیرون جاری می میتوان می توان از مایا به عنوان مقتضای خلقت انسان و عامل ارتباط او با جهان بیرون نام برد. وقتی انسان روند عادی خلاقیت خود را موقوف ساخته و میکوشد که آن را در وضعیتی از بود حقیقی محبوس نماید تا به خیال خودش قائم به خود بوده و خودش خالق جهانش باشد در دام توهم افتاده و این معادله درونی را با فرض نمودن معلولی برای علت غرزی برای جوهر و سایهی برای حقیقت مصلق حل میکنند راه ای که برای خیش حقیقیش حباب روی آب است شخص به تدریج میپذیرد که مایا بخشی از وجود اوست و عمیقا درک میکند که از جهت همین کسرت است که انگیزش های درونی اعمال خیش را همیشه به خدا نسبت می‌دهد. او به این بینش رهنمون می گردد که چون این محرکاتی فقط از جانب نیروهای روانی است قدرت هایی که کالودهای فیزیکی اسیری، الی و ذهنی او را آفریدن در حقیقت قبعه تمییز خود را ارتقا می‌بخشد. و می‌فهمد که چه چیز ماورایی است چیزی که علت هست، نه معلول. او میآموزد که حساب درگیری های فیزیکی و ذهنی خود را از اختلالات روانی که در جرفای زمیرش نهفتند جدا نماید. بایستی همواره نسبت به اختلالات روانی هوشیار باشد. اکثر کسانی که قربانی این آشوبها ها انسانهایی به شدت حساس و تأثیرپذیر و بینهایت نهایت می‌باشند. می باشند تعالیم روانی طریق معقولی برای گشایش فرد نمی باشد چون این شخص را به سوی عدم تعادل سوق داده و در معرض افتار گسیختگی های افراتی در عواطف قرار می‌دهد. و باعث بروز دفتارهای ناهنجاری می گردد که تعصب جاهلانش برای او ایجاد کرده است تا زمانی که یک فرد روانی از آموزش لازم و خیش برخوردار نباشد و تحت مراقبت ماهانتا استاد حق در غیر حیات قرار نگیرد هیچ نقطه استقاعی نخواهد یافت و در برابر هر نسیمی خاموش می‌شود. اشخاص روانی و انسانهای منفعل یا خونفا هرچند در بسیاری از وجوه زندگی خود اشتراک دارند، ولیکن دارای تفاوتی اساسی با یکدیگر میباشند شخص منفعل در معرض قضاوت محکمه جامعه قرار نگرفته است. حالان که انسان روانی در منش اجتماعیش به شدت دچار و تفریط است. لیکن نتیجه کار در مورد هر دوی آنها یکیست او قادر به حفاظت همه جانبه از خود و اعمال کنترل معقولانه و رفتارش نمی باشد و موازنه میان انگیزش های درونی و رفتارهای بیرونی او به هم می وی معلول قدرت روانی شده و نمی تواند از آن خلاصی یابد. راه حل در هر دو مورد یکیست و آن موازنه این دو روی نامتجانس هست که باعث می شود شخص روانی به موقع در برابر حساسیتهایش اکسالمن نشان داده و در برابر نیروهای پلیدی که قصد تحت نفوز درآوردن او را دارند از خود محافظت کند پیشرفت تازه واردین در بطر ورود به طریق اکبسیار کند و بطعی می باشد اما روحی که وعث های اسرار و گروه های را دریافت کرده باشد ارکان درونیش آنقدر سریع شکفته می میشوند که تطاوق خویش را با هویتش از دست میدهد این در مورد اکیستهایی هم که قبلا با تعالیم روانی ارتباطی اند نیز اتفاق میافتد فرد آن را نوعی تسخیر شدگی توسط شیطان یا موجودات اهریمنی به حساب میآورد که همیشه حقیقت ندارد بلکه حواس درونی فرد توسط نیرویی که شناختی نسبت به آن ندارد دچار اختلال شده است این ارتعاشات ناشناخته نوعی سوئه حازمه روانی به وجود می‌آورد که نتیجهش سردرگومی و آشفتگی می باشد به درمان آن است که استاد حق در غیر حیات مدتی او را از مسیر خارج نماید. ویا اینکه های او را در آموزش های عک محدود سازند علت دیگر تنش های روانی یادآوری اجمالی تناسخات گذشته است بخصوص تناسخاتی که در بردارنده رویدادهای دردناک در ارتباط با مطالعات معنوی فرد می‌باشند. در واقع نفوذ مفاهیم روانی به درون ذهن خداگاه حافظه نیمه آگاه فرد را در مورد تجربیات روانی مشابه در زندگی های به کار می اندازن. احساسی که یک خاطره قدیمی را در برگرفته است معرف اصلی در یادآوری یک تناسخ است در که این احساس است که صحیح ترین خاطرات گذشته را فرا میخواند. این حس قبل از آنکه تصاویر به حد کافی شفاف شده و برای چلا ملموس گردد برای مدت زمانی طولانی گنگ و نامعلوم بوده و در آستانه خداگاهی او سرگردان است اگر احساس بیدار شده نخوشایند باشد باعث آشوب شدیدی می شود که در صورت فقدال مشاور معنوی و نبود استاد حق در غیر حیات ممکن است فرد آن را حمل بر یک نیروی شیطانی نماید که قصد آزار او را دارد. تعیین اینکه آیا چراغ دلایل کافی برای عدم رضایت و گلایه های خود دارد یا خیر واقعا مشکل است چه بسا اینها فقط احساسات یا تصورات شخصی او باشند که منجر به بروز مشکلاتش میشوند. شوند ترین کار این است که نظری به پیشینه های چلا افتند شونند زیرا حتی اقلیتی هم که دارای عقاید متعالی بوده و با تکیه بر اقل سلیم در قضاوت هایشان هستند غالبا در مورد اشخاصی که دچار عدم تعادل روانی اشتباه می کنند انتخاب طریق اک یا هر طریق معنوی دیگر توسط فردی که دچار انحرافات جنسیس او را در گرداب مشکلاتی جانفستا گرفتار می آورد. ایشان معمولا افرادی هستند که دیگر از تراوت و جوانی برخوردار نبوده و از طرفی در موقعیتی هم قرار ندارند که بتوانند یک زندگی طبیعی را در پیش گیرند در حقیقت نیادهای زندگیشان سرکوب شده است این در مورد در همه کسانی که در ابتدای پیوست خود به هر مسلکی وصل دریافت می‌کنند نیز مستاد دارد فرقی هم نمی که به مرام های روانی اطراری و یا حتی معنوی ملحق شده باشند چلای خام، بی تجربه و تشنه عشق غالباً با گام نهادن به منجلاب روان دچار استیصال و در کمشکستگی می گردند مراسم وصل گروه‌های مذهبی شدیدن وسته وست کننده است ولی سرانجامش اندوه و ناکامی می باشد. هر کسی که وسی را دریافت می کند بخصوص اگر قوانین هستی را نداند همواره خود را به نحو غریبی در حال قلیان و جوش و خروش میآبد. رهبر گروه معمولا تصویر پدرانه پیدا می کند البته این جاذبه را مریدانش برایش ایجاد میکنند. اگر واصل زن باشد همواره کشش جنسیش در حضور رهبر گروه برانگیخته می شود چه بسیارند زنانی که بیخبر از حقایق اصیل حیات به درون سیاه چال خود هیبنوطیزمی سقوط می کنند بدون آنکه بدانند طبیعت یا نیروی کلان ها را کرده است. شاید چون این اختلالاتی را با تحولاتی درونی که به عمد برایشان داده است اشتباه بگیرند و احساس مسئولیت های به ایشان دست دهد حالان که اینها سرابی بیش نبوده و اساساً بر پایه امیال و احساسات شخصی ایشان شکل گرفته است. عشق جایگزین اغلب نشانهی سجربی چلاس. مثلاً چلایی که به عوض پیش گرفتن رویهی متعارف در عشق به خانواده دوستان و عزیزانش این چشمه های را رها کرده و آن را در قالب مهانتا استاد حق در قید حیات استوار می سافد. ریشه چونین نابهنجاری در این است که اکثریت چلاها تصورات شخصی خود را به مهانتا استاد حق در قید حیات نسبت می‌دهند. و به جای آن که به افکار و عواطف خود آزادی بدهند چنین می‌پندارند که استاد دارای این کیفیات فرزی است ایشان به جای استقای به خود به تصویر یک پدر معشوق و توخماتی این چنینی روی می آورند کسانی که تنشهای شدید نیروهای روانی را متحمل شدند از همان ابتدای ورودشان به اک در معرض چنین تجربیاتی قرار می گیرند که نشان از عدم تعادل ایشان دارند شخصی که مستعد پیشرفت باشد به سرعت در آگاهی والای معنوی معوا می گیرند. در حالی که آن کس که چون این بستری را مهیا نکرده باشد در برابر این تأثیرات روانی تعادل درونی و بیرونی خیش را از دست می هیچ یک از اساتید به نامهربان و کسانی که فاقد دیدگاه بینظرانند، اجازه ورود به حوزه مغناطیسی خود را نمی دهند کسی که ادعا می کند یک معلم است هیچ بویی از بسیرت معنوی نبرده است او نیروی روانی را نمیشناسد. و شکوفایش به حدی نرسیده که قادر به کنترل نیروهایی شود که به طور ناخداگاه از مرکز وجود او به درون حوزه مقناطیسیش جاری است در این حال است هیچ کاری از او ساخته نیست به همین دلیل افاتید اک همگی در انزوا زندگی می کنند. زیرا نه تنها برای ادای مسئولیت‌های خویش نیاز به خلوت دارند بلکه قدرت معنوی آنها با کنش های مرگباری را در روح های نامستعد برمی‌انگیزد که نهایتاً به توهش و خشونت خاص می‌گرفتند این بسیاری از ناجیان را آزار داده و منجر به مرگ آنها توسط توده ها یا حکومت مرکزی وقت شده است اطلاع مبتدی معمولا از بنیه لازم در مواجهه با حملات روانی برخوردار نبوده و از اتخاذ راهکارهای مناسب در برابر جریانات روانی که باعث تحلیل نیروهای درونیش میشوند شوند است چرا بایستی به خاطر بسپارد که هی کل هیچ تخفیفی برای هیچ کس قائل نمی شوند. این نیرو همواره به دنبال روزنهی برای ورود به مجاری آگاهی انسانی است اما هیچ چلایی در اکنکار تنها نیست و نبایستی فکر کند که فراموش شده است زندگی واقعی چلا در ابعاد درونی در جریان است و به توسط انرژی کیهانی اک تقویه می گردند که در آن هر ماهیتی کاستی های ماهیت دیگر را جبران می کند بیفایده است که توضیح دهیم که سلامتی سر و شعف نبایستی در زندگی که بر پایه میل به اجرای اراده الهی بنا می شود انتظار رود برای بسیاری زندگی مذهبی یا زندگی معنوی آخرین پایزهی است که می در آن را بیابند این در مورد کتانی هم که با حرکت در انگیزه های ور مانند، دچار ننگ و رسوایی می شوند، ا حالا میخواهند زندگی خود را مسون و به دور از چشمان مردم سپری کنند، نیز فرزفتون کن کنند. فرضیه وجود دارد که مدعی فقط مردمی می توانند انتظار زندگی معنوی داشته باشند که مادرزاد ظاهد بوده یا آنهایی که با تلاش فردی خود حد معینی از تقدس را کسب کردند. و همچنین اشخاصی که تحولاتی بنیان افکن برایشان رخ داده و ایشان را بالاتر از دیگران قرار داده است این طرز فکر در برخی از زبانهای زنده دنیا تحت عنوان فرضیه مراتب تکامل ثبت شده است و یک تئوری مستدل می باشد اما بنیانگوداران چنین این نظریههایی قادر به تبعیض بین حقیقت و شبه حقیقت نبودند برای این اساس یک زن خاندار نسبت به اکثر کسانی که خود را یک قدیس می‌دانند، یا افرادی که تکاپوی زیادی می کنند تا به کمال برسند بلوغ معنوی بیشتری کسب می ورود به زندگی معنوی یک سؤال بزرگ است شخص باید از خودش بپرسد که آیا این گزینه متناسب با طرز تفکر و دیدگاهش می باشد؟ البته اصولی هم در این رابطه وجود دارد از جمله اینکه شخص بایستی بداند بدون تفکیه ذهنی برای پذیرش خدا یا ورود به کنکار نبایستی چشم و امید به الهامات فدری داشته باشد دعوت فرد به زندگی معنوی به رسم تمامی مقدرات سودمال از طرق مختلفی انجام میگیرد گاهی کاملا صریح و واضح است و در پاسخ به یک تغاضا از راه میرسد که ممکن است در هین مراقبه یا در خلال زندگی روزمره شود دهد. در پاره ای از اوقات توسط دیگران پدیدار می شود. مثلا مستقیما از طریق استاد حق در غیر حیات یا توسط یک چلای دیگر یا به طور غیر مستقیم با گوش فرا دادن به سخنان ماهاتا یا خواندن کتاب ها یا حتی تماشای یک تئاتر چه بسا به واسطه صحنه های زندگی دریافت گردد آن غالبا توسط شرایط زندگی نیازها خلق و خوی یا منش دیگران انجام می شود گاهن از طریق اشراق جایی که به نظر می رسد اراده خداوند مقدم بر تمایل سرد بوده و لازم می باشد به او ابلاغ می گردد. انگیزه های انسانی شرط اصلی نیستند زیرا انسان همواره دارای مخلوطی از انگیزه ها میباشد. آنچه اهمیت دارد آن است که خداوند از طریق آنچه که فرد انجام میدهد اراده خود را عملی میسازد. یعنی انگیزه ها و خوشایند های شخصی فرد را با به اجرای اراده حق نمی کند. هستند کسانی که با بدگمانی و تردید به زندگی معنوی نمی آنها چنین استدلال می کنند که این نوع از زندگی امنیتی کاذب را خلق می کند و در حقیقت فرار از پنشهای همیشگی زندگی بشر است البته میل به امنیت در بسیاری از مواقع ذریبی مهم در بیداری آگاهی و جستجوی خداوند است زیرا کیست می داند که امنیت ابدی را فقط در خدا می توان یافت و بس و واقع هست که چون این خواسته ای فقط توسط آن و در آن ارضا میگردد. اما حقیقت آن است که هر کسی که فقط به منظور تأمین امنیت وارد شود دوام زیادی نخواهد آورد و هر کس که آن را مفضری برای گریز از تمشهای زندگی می داند سنگینی را می پردازد غالبا مشکلات و درگیری های خانوادگی و یا سایر فشارهای روانی شخص را به سوی مهان استاد حق در غیر حیات رهنمون می گردد همگان متوجه این نکته می شوند الا خود چلایی که درگیر ماجراست، اما این به هیچ وجه انگیزه او را نمی پشد. این نشان میدهد دهد که سودماد فرد را به سوی شکلی از زندگی که برای تکامل معنویش لازم است هدایت می کند سودماد امکانات ضروری را برای تمامی روحها و در تمامی شعونات زندگی فردی فراهم می کند سودماد میداند که آن کسانی را فرا میخواند و نیز آگاه است که دعوت آن مبتنی بر دانش فرد، نیازها و توانایی های درونی اوست. اما در خصوص شخصی که به خداشناسی رسیده است، نیز اگر این شخص با خودش صادق باشد، درک خواهد کرد که تشخیص ضعفها و عدم شایستگی هایش قدرت عملکرد در وادی الهی را برایش فراهم کرده است. آن کس که بخواهد با استکار به توانایی هایش شده و از موضع قدرت و اقتدار خدمتی را به نام استاد حق در غیر حیات انجام دهد مشخص است که معنای تسلیم و تقدس را نمی داند همانطور که گفته شد او بایستی از مصدر زعف و نیاز کار کند زندگی معنوی قابل تعریف نمی باشد گاهی اوقات با رفع نقاعث و ضعف هایی که به واسطه تاروپود در همپیچیده شرایط زندگی عادی گریبانگیر فرد شده است موجب تسکیه شده و خود باوری او را بالا میبرد ولی این امکان نیز وجود دارد که یک سری روابط اجباری جائم و چه ملال آور را برای فرد ایجاد کند در هر دو حال مهانتا استاد حق در غیر حیات این روند را تسریع نموده و فرد را به نقطه می رساند که آماده سعود به جهانهای بعدی است به زبان آسان است که بگوییم خداوند ذهن بشر را به آفریده که آن از طریق انسان و ارکان ذهنیش خلقت را دوام بخشد اما در عمل چلا زمانی متوجه حضور اون سال است در زندگیش می شود که آغاز به مشاهده و دقت در پیش پا افتاده ترین و تصادفات زندگیش نموده و درک کند که تمامی آنها اراده خداوند است که از مجرای او به سوی جهان جاری شده است اسناد کراست به اکیست نشان می دهد که فیض ناجیانه خداوند یک بار و برای همه رخ داده است این واقعه نقطه اصف کل تاریخ است که می گوید قلقت در جهانهای پایین پایان یافته است پس مسلما تمامی موقعیت های ممکنه روانی و انسانی و دیت از آگاهی هستند که قبل از آفرینش انسان خرق شدند یعنی هر یک از جنبه زندگی به همیشه حاضر می باشند که پیش از حضور فرد در آنها ساخته و پرداخته شدهاند. و هر کدام از این وضعیت های بلقوه با حضور فرد به فعلیت رسیده و واقعیت می‌شوند. بنابر این روح یک وضعیت نیست. این وضعیت های آگاهی میبایستی توسط شخص از روح فردی تمیز داده شوند. وضعیت های آگاهی متغیر و رو زوالند اما روح فردی بلا تغییر بوده و هرگز معدوم نمی‌گردد. مادامی که روح در درون این وضعیت های تحتانی است در واقع در آگاهی انسانی حضور دارد و ممکن الوجود است در این حالت وقتی که منابع عشق و محبت از قماش تصورات و انفعالات دنیای درون جدا می شوند تبدیل به یک عملکرد یا وضعیت جدید می شوند در که این نکته مهمترین واقعه تاریخ حیات چلا بوده و در حقیقت نقطه اصف آگاهیش می باشد حقیقت برای همه یک چیز است اما آگاهی از آن و بهتر بگویید خدا آگاهی از آن مغولهی دیگر است آنگاه که چلا پی به این حقیقت اعظم میبرد برد که همه چیز در دنیا به جز نمایشی از فعالیت درونی ذهن او نیست و همین عمل کرد باعث زایش تصفیه کارمای او می شود و اینکه شرایط و شاخص‌های زندگیش فقط و فقط انعکاسی از وضعیت آگاهی است که در آن بهتر می‌برد، زندگیش به کلی منقلب می‌کند. این تجربه او را از فردی خام به انسانی مجرب تبدیل می‌کند. حالا او توانایی تمییز بین زندگی انسانی روانی و معنوی که همگی در جهان درونی او پیش می‌رواند را خواهد داشت. بر او آشکار می شود که خودش خدای قلم رو به آگاهی خیش میباشد. و وضعیتی که با آن می پیوندد کننده نوع تجربیات زندگی او میباشد. باشد او بایستی این حکمت را با دیگران می سهیم شود زیرا با دانستن این نکته همگان از چمدال کلنیرنجان حاکم مقتدر و مستبد جهانهای پایین خلاصی می و مزید بر آن از اعتقاد به علت فانوی که همان کل می باشد، نیز رها می گردند. خلقت در جهانهای تحتانی به پایان رسیده است نسخه اصلی آن در اعماق هر روحی پنهان است روح در دوره تلائی شاهد آن بوده است و از همان زمان تا کنون سعیش برین است تا آن را به خاطر آورده و تمام یا بخشی از آن را احیا نماید. در این مورد نظریه های متعددی وجود دارد ولی کن انسان مکلف است که زلاغ دیدگاه را از چشمان روح دست آورد. با این دیدگاه نوین فرد متوجه می شود که زمان عبارت از پرشهای ركن توجه به هر لحظه از ابدیت است. زیرا خلایی به عمق یک سیاهچاله عظیم هر دو لحظه این جهان را از یکدیگر جدا می کند. شخص میبایستی جهان را به صورت مکانی که شامل شمار نامحدودی از بدعیدهای آگاهی است باور کند و از ایاتی که از آنها میتوان ناظر بود این حالات آگاهی همچون اتاقها و منزلگاههایی در امالت خداوند هستند و همانند اتاقهای منازل در موقعیت ثابتی نسبت به یکدیگر دیگر تنظیم شده‌اند. اما روح ساکن زنده و متحرک این کاخ کبریایی است هر اتاق شامل وقایع و شرایطی از زندگی در درون مقیعیت های بیشمار و از پیشتعین شده است که هنوز فعال نشدند همین که روز به آنها وارد شده و میدان ارتاشی خود را در آن برپا می‌دارد، فعال می شوند. هر اتاق نمایانگر فعالیت های معینی می باشد. برای ورود به یک وضعیت انسان باید تمامی آرا و عقاید و احساساتی را که در آن وجود دارند بپذیرد اگر او وارد جهان افیری می شود بایستی مجوز ورود ادراکات و خصائص آگاهی اسپری را به درون خودش صادر نماید این وضعیات یک رشته از تحولات و هایی را که انسان باید تجربهشان کند به وی ارزه می دارند. خاصیت آگاهی این است که شخص برای حرکت به سوی یک اتاق یا وضعیت دیگر ملزم به تغییرات بنیادی در عقاید و دیدگاهش می باشند. تمامی آنچه که فرد تا طلبیده است از قبل حضور داشته و فقط در انتظارند تا به نیروی باور او زنده شوند حقیقت همین است روح بایستی وارد زمین باگر و بدون مالک شده آن را تصاحب نماید و با پذیرش مسئولیت مزه خیش را کشت کند آنجا خانه فرد می شود منزلگاهی که از پنجره اش جهان را نظارگر است